بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده و ونؤمن و نؤمن بهی و نتوکلو علیه و نسلی و على البشیر النظیر سراج المنير العبد المعيد الرسول المسدد أب القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم کل وليك که الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه ساعت و فی كل ساعة وليا ولی و وناصرا و و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکه توعا و تمتعه فیهاد قبیلا اوسی عباد الله به الله و اخویف من عقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا می نمایم حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی گذشته ها گذشت گویا با یک چشم برهم زدن دیروز بود که گفتند آغاز سال 1392 و با یک چشم به هم زدن دیگر خواهن گفت آغاز سال 1392 هفت مولا علی میفرماید گذشته ها گذشت گذشته هایی که باید اعتراف کنیم فراوان از قفلت از خدا گذشت زمانهایی بر ما گذشت که یادمون رفت که ما بنده خداییم و هرچه داریم از ذات مقدس اوست امیر المؤمنین در خطبه هشتاد و شش نهجل بلاقه می فرماید کو بقیت ایام چند روزی بیشتر باقی نمونده از این چند روز استفاده کنید بحره ببرید وست برو لها انفسکم این همه عمر در مسیر اطاعت شیطان گذشت بگذار چند روزی هم در مسیر اطاعت خدا باشد فا قلیل فی کثیر الایام لتی تکون و فی هل و تشاغل ان الموعزه مدتهای فراوان با بیخبری از خدا گذشت بگذار این چند روز با با عشق به خدا بگذرد قبل از اون که بگیم ای کاش قطعا میرسد زمانی که ای کاش میگویم وقتی ابرهای مرگ سایه افکن شد ای کاش تو قبر میگذارند ای کاش از قبر برمیخیزیم ای کاش تا آخرش که یا لی تنی کن تو ای کاش خاک بودم انسان نبودم قبل از آن که به چنان روزی بیفتیم دریابیم ایام باقیمانده را در خطبه های اول سخن از سبک زندگی قرآنی داشتیم با محوریت یا ایوهاللزین آمنوهای قرآن در این چند خطبه اخیر از آیه دویست سوره آل امران گفتیم یا ایوهاللزین آمنوس برو و صابر و راضی و تغلب تفلحون در این آیه موفقیت جامعه اسلامی در گروه چهار امر خونده شده یکیش صبر است یکیش مصابره هست در برابر صبر دشمنان صبوری پیشه کردن یکیش مرابطه است مفسران دو معنا برای رابطو کردند معنای اول مستحکم کنید پیوندهای اجتماعی رو با هم قهر نباشید صفا و سمیمیت در جمعتون باشد معنای دومی که برای رابطو شده است استحقام مرزهای اسلامی است واجه صبر و واژه مسابره غرینه است بر اینکه این معنای دوم اقرب به واقع است مراقب مرزهاتون باشید نگذارید دشمن نفوز در مرزهای شما داشته باشه این مرزها ابعادی داره بود اول این مرز مرز سیاسی است مراقب باشید مرز سیاسی نظام اسلامی آسیب نپذیرد روایت از امام صادق علیه السلام هست فرمود را به از امامان حق از امامان عادل جامعه اسلامی حمایت کنید تنهاشون نگذارید چنانی که امام حق علی تنها ماند فرمود لا رعی لمن لا یوتا در یه روایت دیگر هست را به تو من تقتدون به دفاع کنید به امامی که بهش اقتدا میکنید نظام سیاسی شاکلش با رهبر شکل میگیره اگر رهبری در هر نظام سیاسی آسیب ببیند شاکله اون جامعه به هم خورده مولا علی علیه السلام در خطبه 146 نهج البلاغه می فرماد و مکان القیم بلا امر مکان نظام من الخرز یجمعه و یزمه فا قطع النظام تفرق الخرز و ثم سملم یجتمه به هزافیرهی ابدا اون نخ تسبیحی که مهرهها رو دور هم قرار میده اون رهبر جامعه است آسیب ببیند این دانه ها از هم متفرق میشن دیگه قابل اجتماع هم نیستن رابطو یعنی در عرصه مرزهای سیاسی دفاع از رهبری حق کنید تا او بتواند وظائف اساسی را انجام بده امیر المؤمنین علی علیه السلام فرم... فرمود نگذاشتند لو ثبتت غدمای و كثیرا من الامور اگر زیر پام سفت میشد خیلی چیزها رو تغییر میدادم به حق علی تنها ماند و باریک الله به این شعار مكتبی شما بعضی از شعارهای شما شایسته است محور یک کتاب بشه ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند آهل کوفه دومین مرز که رابطو در موردش صدق میکنه مرض فرهنگی است شما عزیزان چه نسل قبل از انقلاب چه نسل بعد از انقلاب میدانید چه انقلاب اسلامی ما بر پایه انقلاب فرهنگی شکل گرفت انقلاب در بینشها انقلاب در دانشها انقلاب در ارزشها، یک فرهنگی به نام فرهنگ ستم شاهی جای آن فرهنگ اسلامی آمد اگر دشمنان بتوانند دوباره جا به جایی صورت بدند فرهنگ اسلامی که بر اساس انقلاب آمده جاش به فرهنگ دیگران بدهد تردید نکنید که انقلاب آسیب دیده رخنه رخنه بسیار است. چرا مقام معظم رهبری از آغاز رهبریشون تهاجم فرهنگی شبیخون جانبه فرهنگی ناتوی فرهنگی میگویند این نشان دهنده درک این خطر و خطرناک بودن این رخنس نقش اول و در این عرصه علما دانشمندان نخبگان فرهیختگان دارند. امام صادق علیه السلام که در احتجاج تبرسی جلد یک صفحه صد بله صفحه است، هست فرمود علما و شیعتنا مرابطون آلمان شیعه مرزبانند یمنعونهم هم ان الخروج علا زعفاء شیعتنا آلمان دین نخبگان فرهیختگان نباید در برابر انحراف فرهنگ آرام بگیرند ازا وحرط البدع فعلالعالمه ان یظهر علمه و الله فعلیه لعنت الله این هم مهمه و رابطو نگهبان مرزبان مرزهای فرهنگی باشی سومین مرز مرز نظامی در دنیایی که گرگها حکومت میکنند منطق در کار اونها نیست در دنیایی ای این چنین نمیشه مسلح نبود در دنیایی ای این چنین نمیشود مقتدر نبود باید مقتدر بود لکن یک فرق بین اقتدار ما و اقتدار دیگران هست اقتدار دیگران برای تجاوزگری است اقتدار ما برای بازدارندگی است وععدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله وادوكم قدرت نظامی ما برای بازدارندگی است برای اینکه که گرگهای مستکبر خیال تجاوز را هم به خودشون ندند ما موشک داریم موشک هم می سازیم. و هرچقدر هم که بتوانیم بر برد موشکمون افزایش میدیم، هزار کیلومتر، هزار و کیلومتر، تا خواب راحت رو از چشم کاخ سفید نشینان بگیریم و میگیریم. قام معظم رهبری فرمود مواجهه با خصومت دشمنان در گرو توانائی نیروهای مسلح است تاکید میکنیم از ترس هم نیست سراغ بمب اتم نمیریم چون نه نبی ان سم فی بلاد المشرکین پیغمبر اکرم ما رو از سلاح کشتار جمعی من کرده ولی از بمب اتم گذشته به فضل خدا در عرصه قدرت موشکی نظام اسلامی ما مسمم است بر اقتصاد قدرت بر اقتصاد قدرت موشکی ما بر ارتقاء قدرت موشکی ما که اگر یه روزی دیوانهای به نام رژیم سهیونیستی خواست غلطی بکنه تلاوی و حیفا را با خاک یکسان کنیم این هم مرزبانی نظامی یا ایوهاللزین آمنس به روح و ساب روح و رابط و تقالله لعلکم تفلهون فرودگارا به کرمت جهان اسلام را در برابر جهان کفر مقتدر و مقتدرتر بفرما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر الله اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و نستعینه و بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و نسلی و نسلم علالبشیر النبیر السراج المنیر العبد المعيد الرسول المسدد عبل القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لعنت الله على أعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين و فاطمت فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمين و على العمامین الحسن والحسين سید شباب اهل الجنه اجمعين و على ائمه المسلمین علي بن الحسين و محمد ابن علي و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد ابن علي و علي ابن محمد و الحسن ابن علي والخلف الصالح الهجت القائم اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا و, و عباد الله بتقوى الله و اخففكم من عقابه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اعلم و عباد الله انتقوا دارو حسن عزید و الفجور دارو حسن زلیل میخواید بیمه میشید در برابر گناه در برابر معصیت این بیمه با تقوا حاصل میشه حریم نگه دارید برای خداوند خودتون رو در محضر مبارکش ببینید این بازدارنده است سلام و درود خدا بر امام راهل عظیم و فرمود عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید والفجور دارو حسن زلیل کسی افتاد تو وادی گناه دیگه تو سراشیبی قرار میگیره تا ته دره خواهد رفت گناهان مثل آن است که تشنه ای آب شور بخوره. با خوردن آب شور سیراب نمی شود می, رود، می, رود، می رود، تا سر از کفر در میاره. شیرزن قهرمان کربلا زینب در مجلس یزید این آیه را خون ثم آقبتال لذین اصا و سوآ انکذبو به آیات الله الله که همه ما در این بیمه ذات مقدس ربوبی قرار بگیریم که تقویه در خطبه دوم هشت مناسبت هست و سه تحلیل آماده کردم محضرتون ارز کنم امید کرد از نساب وقتی ما هم نگذرد مناسبت اول کشور همچنان مؤثر است به اثر وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و و وسلم و حضرت امام صادق علیه السلام جای تبریک داره تبریک ارز می کنم محضر شما خوبان و از خداوند می خواهم انشاءالله رحرو به راه این گلهای بیخار جهان هستی باشیم دیروز روز دانشجو بود دانشجو و طلبه دو بال رشد این کشور هستند از دانشجویان گرامی انتظار می رود، اون بهانه ای که سبب شد شونزه آذر به نام اونها نامیده شود اون بهانه را پاس دارند اون بهانه ایستادگی در برابر دولت متجاوز امریکا و ایستادن در مقابل مسئولان این دولت متجاوز بود امروز هم دانشجویان عزیز ما می توانند با درس درس عمیق با تعهد با بسیرت همان نقش رو ایفا کنند مناسبت سوم برخورد قاطع سردار سلیمانی با نامه رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکاست یا برخورد عزتمندانه ای بود نامه را باز نکرده به اونها برگرداند نامه‌ای که خودشون اعتراف کردند که چنین نامه ای رو به این سردار سرفراز فرستادند و او عزتمندانه مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد مناسبت چهارم پیروزی عزیزان ما در تیم ملی وزنبرداری جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی و افتخاری که این پهلوان علی رضا کریمی داشت که در مسافه با ورزشکار رژیم سهیونیستی قرار نگرفت چون اصل این رژیم جعلی است این موزه از پیروزی کمتر نیست این در حقیقت نماد عزت ایرانیان شد ما به چنین ورزش و چنین ورزشکاری میبالیم مناسبت پنجم هفته آینده دوشنبه سالگرد شهادت سومین شهید محراب آیت الله شهید دست است که به حق عالمی وارسته پیشگام در انقلاب و محذب نفوس بود گفتار و رفتارش آدمساز بود بسیر بود اول رهبری اول ریاست جمهوری آقا بود وائل سال ش ایشان رفتند شیراز این عالم فرزانه در خطبهها گفت که این بزرگوار هیچ هوا ندارد دنبال تکلیف وظیفه است. ایشان را تشبیه شد به امام راحل عظیم و شند ششوین مناسبت دوشنبه روز در عالم وارسته عارف بزرگ آمیجواد آقای تهرانی که از علمای مشهد بود عالم بزرگی که یوزکی رو الله رویتو می دیدیش به یاد خدا می افتادی و انصافاً آلمی بود که هوا رو در وجودش له کرده بود هفتمین مناسبت در گذشت شاعر مخلص اهل بیت جناب چایچیان که ملخص به حسانه اشعار بلند او در مناقب اهل بیت مندگار شده بر لب آب و از داغ لبت می میرم هر دم از غصه جانسوز تو آتش گیرم شعر بلندی در رسای، حضرت اول فضل از خودش میگوید من پیرو دعبل و کمیتم من سائل باب اهل بیتم گر دست مرا علی نگیرد لنگ است در آن جهان کمیتم مرد بزرگی بود عمر 94 سالش در این مسیر گذشت و آخرین مناسبت در هفته گذشته دهقان فداکار رو در میانه مردم به خوبی تجلیل کردند. در یه مقطع فداکاری کرد جان تعداد زیادی رو خرید کتکم خورد اما بعد فهمیدند آنچه او انجام بود داده، به نفعشون بوده، اهل جبهه بوده، فرزندش، جان جانباز بود، حشر همه این عزیزان با اولیاء خدا. دو مطلب در این فرصت کم، سه مطلب هست. در تحلیل مسائل روز دارم، یکی مسئله زلزله، که از یاد رفتنی نیست در نقاط مختلف کشورمون یه مطلب اینه که الحمدلله مردم در این عرصه سنگ تمام گذاشتند تلویزیون نشان داد که بچه دامغانی گلکشو شکسته پول جمع وجور کرده کانیک برای زلزله زدگان سرپل ذهاب فرستاده این بسیار مهم است آفرین بر این نودوستی مردم ما که انصافا سنگ تمام گذاشتند نکته دومی که هست این است که داریم به طرف سرما میریم اون طرف هم سرما شدیده دارید کار میکنید مسئولین محترم انتظار این است که تسریع بشه در این امر که این سهماه سرمای زمستان بر این داغ دیدگان و مصیبت دیدگان سخت نگذره نکته سومی که اینجا هست این است که مسئولان محترم کشور ما زلزله خیزه می‌خواید باور کنید میخواید باور نکنید کرمانشاه کرمان بوشه گیلان هر از چندگاه گوشه ای از کشور زلزله میاد بپردازید به استحکام بناها برنامه ریزی داشته باشید ده ساله 15 ساله بیست ساله. ما تنها کشور زلزله خیز که نیستیم ژاپن هم کشور زلزله خیزه. اما اینا زلزله را باور کردند به استحکام بناهاشون توجه دارن ما هم توجه داشته باشیم اینو در دستور کارتون قرار بدید که در این حوادث غیر مترقبه آسیبهای این چنینی نبینیم و آخرین نکته هم این که به همدلله مسئولان ما سنگ تمام گذاشتند گاهی بیانصافی میشه و گاهی ضد انقلاب کاری میکنه که اعتماد از مسئولین ما برود این تهمت اگر در همون لحظات اولیه ارتش و سپاه نرسیده بودند زیر آوار منده ها رو در بیارن کشته ها هزاران میشد به سرعت از راه رسیدن این عزیزان همه مسئولان هم خودشون را رسوندند به مناطق زلزله خیز و با انگیزه دارن خدمت میکنن اعتماد کنیم به مسئولان محترم و خدمتگذار منتها به کم نباید قانع بود این یک تحلیل تحلیل دوم در رابطه با انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از تلاویب به قدس شریف هست که فریاد جهان را درآورده، آورده نه تنها جهان اسلام حتی هم پیمانان امریکا هم دادشون درآمده. اینجا نکاتی هست نکته اول این است که برخی از مسئولان خود امریکا گفتند این رئیس جمهور تازه به دوران رسیده امریکا مشکل روانی داره باید دیر نشده قبل از اینکه فجایع دیگری این روانی به وجود بیاره درمانش کنم. و, و الا کار دست بشریت میده این یه نکته نکته دوم این است که حدود 70 سال که فلسطین اشغال شده در طول این 70 سال هم مدام دنیای استکبار حامی این اشغال بوده و الان هم دموکرات و جمهوری خواه و همه اینها حامی این اشغال ظالمانه هستند و این تصمیم اخیر به مضاعف است و باید جهان نه تنها جهان اسلام در برابر این تجاوز آشکار به حقوق مردم فلسطین بیز نقطه سوم این است که در این عرصه واکنش واکنش بسیار گسترده ای بوده حتی هم پیمانان امریکا هم تعبیرشون در بیانیه هاشون اینه که به شدت محکوم کردن ولی این کافی نیست باید در کنار این محکوم کردن اقدام عملی داشته باشه اقدام عملی هم همان است که رهبر مجاهد حزب الله گفت سفراشون رو فرا بخوانند و خانه های رژیم صهیونیستی را در همه جهان ببندند اونه که دشمن رو وقیه کرده اینه که هم امریکا میبینه هم رژیم صهیونیستی که این شلوک و این اعتراضات یه مدتی ادامه پیدا میکنه و تمام میشه نباید تمام بشه باید این فریاد و خروش تا عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از این تصمیم جنایتکارانه اقامه ادامه داشته باشه نکته چهارم این حرکت مقدس شما بعد از نماز جمعه هست این رو دست کم نگیرید. این گام و این فریادتون در این مراسم از اون گامها و فریادهای های است تجلی براعت، تجلی قذب لله شعار مرگ بر اسرائیله باردو، باردو، باردو، باردو، باردو، باردو. نقطه دیگر این است که ترامپ با این تصمیمش قلم قرمزی بر تمام مذاکرات این هفتاد ساله کشید و نشان داد راه درمان غصه فلسطین تنها و تنها انتفاضه است این انتفاضه است چه روز رژیم صهیونیستی را تبدیل به شام سیاه خواهد کرد بتازید بر این رژیم اشغالگر هر چقدر که بتوانید آسیب به این رژیم اشغالگر و جنایتکار برسانید قدمی خداپسندانه برداشته اید و نکته دیگری هم که در این رابطه هست این است که توجه داشته باشند جهان اسلام مسلمان باید غیرت داشته باشه اگر در این آخرین جلوه‌ای که از اسلام در رژیم صهیونیستی باقی مونده فریاد نکشید کی میخواهید فریاد بکشد فریاد بکشید غیرت شما کجا رفته انسانیت شما کجا رفته و این چنین دم از عربیت میزنید اینها عربند چرا دفاع نمیکنید از اینها دم از اسلامیت میزنید اینها مسلمانند چرا دفاع از اسلام نمیکنید چرا از قبله اول مسلمین دفاع نمیکنید این بیغیرتی هر که در این عرصه فریاد نزند به سحن نیاد قطعا بی غیرت است غیرت اسلامی اقتضای خروش و فریاد علیه اشغالگران دارد خداوند به کرمش شر دشمنان اسلام رو از سر مسلمانان بردارد آه. توتعه ها خونسا توتعه گران نابود بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعتینا کالکوفر فصل لرب کونحر انا شانع هو ابتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته